افغانستان در مسیر تاریخ حوادث تاریخی افغانستان مملو از فراز و نشیب هاست که باید آن را شنید و از آن آموخت واقعیت های تاریخی افغانستان را در این برنامه بشنوید. افغانستان در مسیر تاریخ روزهای سه‌شنبه ساعت ده قبل از ظهر روی فرکانس 92.9 FM ناشر ملی. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام وقت شما بخیر. امیدوارم که روز خوب و خوشی را کرده باشید. با از برنامه افغانستان در مسیر تاریخ در خدمت شما هستم. و در این برنامه به ادامه مبحث قبلی سیاست انگلستان در هندوستان می پردازیم. در برنامه قبلی گفتیم که پنجاب مشتعل شد و در آتش جنگ سوخت و دولت و استقلال آن از بین رفت و رنجین کشته شد بعد از مرگ رنجید خاندان شاهی نابود و منفجر شد اردوی قوی پنجاب که حاصل زحمت چل ساله کشور بود ضد خود کشور به کار انداخته شد. پسر بزرگ و جانشین رنجید گریکسنگ فقط یک سال توانست سلطنت کند و بس. در حالی که پسرش نونه سنگ در اقتدار پدر دست انداخته بود. گریک در نومبر سال 1840 بمرد و نونه همین که بعد از فوت پدر به غرض جلوس به تخت سلطنت داخل دروازه ارگ شاهی شد، کنگره های سر دروازه بر سرش قلطید و در همانجا جان داد. رنجید چندرکور ملکه و جانشین گریک سنگ بعد از چهار ماه پادشاهی به دست درباریان محبوس و در زندان کشته شد. شیرسنگ پسر دوم رنجید در سال چهارم پادشاهی خود با پسر ده سالش به دست دهیان سنگ وزیر و علیه هاسنگ سنگ درباریان مقتدر خود، در تفرجگاه خارج شهر لاهور کشته شد. هیراسنگ پسر وزیر مقتول قشون پایتخت را بر سر انتقام آورد و الله را کشت. بلاخره قشور انگلیسی داخل لاهو شد و گردنبند سیستم ولسی را در گردن پنجاب یار قدیمی خود انداخت. تمام عراضی بین ستلج و راوی به انزمام ولایات کوهستانی افغانستان که از طرف رنجیت قصب شده بود به انگلیس ها داده شد. نمایندگان و معاونین آنان در حسه های مختلف پنجاب برای نظارت امور داخلی کشور مقرر شدند. از آن جمله در خاک های افغانی چون پشاور و و بنو و غیره جارج لارنس و هربرت ادوارد مأموریت یافتند بعدها همین لارنس گورنر جنرال هند شد پنجاب پول بسیاری به دشمن پرداخت و قشون انگلیس در کشور پنجاب مقیم شد در سه سال فشار انگلیس ها در ولایات افغانی و پنجاب باعث قیام مردم شد افغان های پشاور و چج و هزاره برخاستند شیرسنگ در پنجاب به جمعآوری اسکر پرداخت در ملتان دو نفر انگلیسی را کشتند جارج لارنس که چنین دید با زن خود در شاهدره لاهور مسکن سردار سلطان محمد خان مشهور به طلایی پناهنده شد مگر سردار هر دو نفر را به سیکا تحویل داد زیرا سیکا که ضعف خود را در برابر انگلیسها ها احساس کرده بودند، متوجه افغانستان شده و توسط سلطان محمد خان از امیر دوست محمد خان استمداد نظامی در برابر انگلیس ها و وعده اعاده ولایات مخصوبه از افغانستان را در سواحل راست هند داده بودند. سلطان محمد خان این مراتب را به کابل نوشت و در انتظار جواب بود. امیر دوست محمد خان در تحت فشار تقاضای مردم مجبور شد که برای استرداد خاکهای از دست رفته افغانی با سپاهی تا قلعه اتک برود مگر از اتک پیش نرفت و یک قشون پنج هزار نفری به قیادت سه نفر از خانواده خود به نامهای سردار محمد اکرم خان، سردار شمسدید خان و سردار شاه دوله خان در رزمگاه گجرات سوخ کرد جایی که شیرسنگ و چترسنگ با قشون پنجاب سفارایی داشتند و در مقابل آنها کولنل هربرت قرار داشت که قبلا توسط سه جنگ قیام را مغلوب کرده بود. در 21 فوریه سال 1849 جنگ گجرا درگرفت و سردار محمد اکرم کرد. شیرسنگ که به تنهایی از عهده قشون انگلیس برابندن می دل از دست داد به راوپندی رفت و تسلیم دشمن شد در چین وقتی که انگلیس در نهایت استراب منتظر حرکات امیر دوست محمد خان و قوای جنگاور افغانستان بودند ناگهان شنیدند که امیر دوست محمد خان بدون اندک اقدام نظامی و یا سیاسی خاموشانه از پشاور به جلال آباد و کابل برگشت و نه این که پنجاب را بلا منازع برای انگلیس ها گذاشت بلکه ولایات افغانستان را هم بدون صاحب در دسترس دشمن گذاشت در حالی که دیگر دولت سیک پنجاب وجود خارجی نداشت و هم هنوز انگلیس ها در این ولایات افغانستان دسترسی حاصل نکرده بودن در واقع این روش امیر از بزرگترین خطاهای او بود که دیگر در طول بیشتر از یک قرن تلافی نشد و آن فرصت طلایی از دست رفته بر نگشت لارد دالهوزی گورنر جنرال هند به این آسانی میدان را خالی و آخرین دولت مستقل هندوستان را نابود شده یافت انقراز سلطنت پنجاب را به دنیا اعلام کرد و لارنس با عنوان چیف کمشنر حکمران کشور پنجاب شد دلیپسینگ سنگ پسر رنجی در لندن طبیعی شد و کشمیر هم قبلا به ریاست کلاپسنگ مجزا شده بود. از این بعد قشون پنجاب جز اردوی استیلاگر خارجی قرار گرفت و برای سرکوبی هموطنان آزادیخهایشان آماده ساده شد. حالا حکومت انگلیسی هند به حیث میراسخار رنجن سنگ در به دیوار افغانستان شد و تمام ولایات افغانی سواحل راست سند را در دست داشت لحذا تمام فشار سیاسی و نظامی بر شانه افغانستان افتاد افغانستان بیشتر از 100 سال دیگر در زیر ضربات سنگین انگلستان با تحمل مصائب و آلام بسیار اجتماعی و خسارات مادی و معنوی گرفت اگر دولت های همجوار افغانستان مستحکم می بودند و اگر این دولت ها در عوض دشمنی و تجاوز به خاک همدیگر دوست و متحد می بودند استعمار اروپایی به این سهولت نمی توانست در و وستا فرمان روا شده و استقلال و تمامیت ارزیشان را لگت مال کند زیرا اتحاد این ممالک به نفع همه و ضعف و فساد یکی مؤثر بر دیگران بود اگر دولت های هند و پنجاب متزلزل و منحت نمی بودند، استعمار انگلیسی رای خود را در افغانستان به آسانی باز کرده نمی توانست. و اگر دولت آسیای آسیا با هم دوست و متحد می بودند، نه ایران از روسیه و نه هند در افغانستان از انگلیس اینقدر صدمه نمی بعید نیست که این کشورها در مسیر تاریخ باز در سر این اینجین موقفی قرار گرفتند و این بار، درک کنند که دوستی و اتحاد ایشان از نظر منافع و استقلال ملی یک امر حتمی است و این اتحاد و همکاری نه تنها از نظر سیاسی بلکه از نظر اجتماعی و اقتصادی هم ضروری است اگر نه هر یک به تنهایی به قرض حبس موجودیت خود از تتاول یکی به آغوش دیگری خواهد افتاد و مبنای زندگی خود را بر پایه خصومت بین قوا بزرگتر قرار خواهد داد در حالی که این یک وسیله محقر و موقتی خواهد بود و به مجرد سازش این قوتهای بزرگ کشورهای آسیایی تگیگاه سیاسی خود را از دست داده و هر یک در مناطق نفوذ تقسیم خواهند شد. چیز مسلم این است که بشریت امروزه از آن مرحله نهایی هنوز دور است که یک دولت واحد آفاقی بین المللی بر پایه برادری و برابری به وجود آید و این همه کشمکش های منحدم کننده جهانی نابود شود. زیرا موجه های نشنالیزم مخصوصا نشنالیزم کنونی کشورهای مقدر جهان قرب در مرحله مدر تقیان قرار دارد و این نشنالیزم اروپا در شکل نهای خود به جز یک فاشیزم قارعی چیز دیگری نیست و اما ها در هند بعد از فتح پنجاب متوجه برمه شدند. در سال 1852 منطقه بیگورا به شمال پایتخت رنگون با سرنیزه اشغال کردند و گفتند که مردم کشور برما آنقدر به عدالت حکومت انگلیسی عاشق شده بودند که از انگلیس ها تمنا کردند تا آمده مملکتشان را فتح نگاهی به عکس عمل مردم هند در مقابل انگلیس ها اولین شعله انقلاب مردم هند در سال 1857 در قشله نظامی مروت دهلی زبان زد و به زودی تا لکنو و بنارس و گانپور و سایر حساس هند رسید در این وقت در پهلوی هر اسکر انگلیسی شش اسکر بومی استفاده بودند و اولین آتش هم از طرف اینها افروخته شد ها احساس کردند که اگر این آتش با آتش خاموش نشود کلیه نفوذ و قدرت ها را در سراسر هندوستان خواهد سوخت در لکنو بیست و هزار اسکر هندی قیام کردند و یک هزار افسر انگلیسی را کشتند و جنرال هارنی لارنس را با تمام همراهان انگلیسی او به محاصره کشیدند وقتی که سپاه امدادی انگلیس به قیادت جنرال هیلوگ رسید هم زیر محاصره گرفته شدند در بنارس سپاهیان هندی و سیک افسران انگلیسی را زیر آتش قرار دادند. در کانپور به قیادت دنت و پاند معروف به نانا صاحب ها جنرال ویلر و انگلیسی ها را اسیر گرفتند در حالی که ده هزار مرد از اگره و گوالیار به اردوی انقلابی پیوسته بود همچنین در بسیاری از شهرهای هند قیام های دست جمعی به عمل آمد انگلیس ها که با حادثه ی حیات و مماد مواجه شده بودند با مسایی آخرین خود یک فرقه 12 هزار نفری با چهل توب از کشمیر و پنجاب و مدرس و کلکته تهیه کردند و به طرف دهلی سوق نمودند انقلابیون چهار ماه تمام با دشمن مسلح جنگیدند ولی بلاخره از اسلحه فایق انگلیسی شکست خوردند. دهلی تسخیر، مردم قتل عام، پنج نفر شاهزاده هندی اعدام، و شاه و ملکه بابوری اسیر و در زندان رنگون محبوس شدند. در لکنو خشونت امدادی انگلیس رسید. محصورین انگلیسی را رها شهر را مسخر و انقلاب را با شدت خاموش کردند. در کانپور جنرال نیل و جنرال هیلوک نانا صاحب را مغلوب و از شهر براندند و انتقام سختی از مردم کشیدند. زیرا سپاهیان اسکاتلندی نشه دختر جنرال ویلر را پیدا کردند و موهایش را بین خود تقسیم کردند و سوگند خوردند که در برابر هر موی او یک نفر هندی را بکشند و جوی خون براه انداختند. این کشتار به درجه وحشتناک بود که حکومت کلکته مجبور شد سپاهیان اسکاتلندی را خلق سلاح کند. این حملات انگلیزی ها در مناطق شمالی هند و نیز به شدت عملی شد و بالاخره مرتحان مغلوب و قاید انقلابیون از و از حلق آویخته شد. به این ترتیب انقلاب هند در سال 1858 سرکوب شد. در ایام شدت انقلاب انگلیسی ها به این فکر افتادند که ولایات افغانی سواحل راست سند را به افغانستان مسترد کنند. و لارنس پیشنهادی به لندن کرد. اما انگلیس های خیرسر لندن به این پیشنهاد جواب رد دادند. در حالی که امیر دوست محمد خان به حسی یک تماشاچی طرف از دور شاهد این اوضاع هند بود و با وجود اصرار مردم یک قدم در این راه بر نداشت و یک سخن هم نگفت پس بهترین فرصت استعداد خاکهای مقصوبه افغانستان بار دیگر از دست رفت. بعد از انقلاب هند پارلمان لندن هندوستان را از زیر نفوظ کمپنی شرق الهند خارج کرد و به تاج و تخت انگلستان مربوط ساخت. ویکتوریا ملکه انگلیسی به نام ملکه هند نیز اعلام شد و گورنر جنرال هند عنوان ویسرا یا نایب و را اختیار کرد. سر جان لارنس وایسرای هند با ولایت بوتان جنگ کرد و در دوره حکومت او دو قحطی بزرگ و وحشتناکی در هند غربی و اوریس افتاد که هزاران نفر هندی گرسنه جان داد. ویسرا لاردم دیو در سال 1870، در جزایر اندمان از دست یک نفر مرد درد رسیده کشته شد. در دوره لرد ناتبورگ قحطی عظیمی در بنگال رویداد. ویسرا در سال 1877 ملکه انگلستان را امپراتوریس هندوستان اعلان کرد. و در دوره زمامداری او در هند جنوبی و دکن قحطی شدید افتاد که 5 میلیون هندی از گرسنگی جان داد. و یسرال لارد با اشتعال جنگی برمای علیا را ضبط و پادشاهش را به هندستان تبعید کرد این بود برنامه افغانستان در وسیر تاریخ که در این هفته تقدیم حضورتان شد روش انگلستان در هند و عملکردهای این کشور را در هند در برنامه هفته بعدی به پیش خواهیم برد. تا برنامه دیگر خداوند حافظ و نگهدار همیتان شنونده ادامه برنامه ها از رادیو غزاری کشید